بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على عشرة الانبیاء والسيد المرسلین و آله و صحبه اما بعد و به نساین قبل از اینکه ما هر بحثی را شروع بکنیم ما باید به اهمیت اون موزو بکرداتیم اهمیت اون موزوز را زفو کنیم اهمیت این حدیث شرفش و منزلتش در درسیه در اون وسیله‌ای هست که ما را به سخن الله و سخن رسولش صلی الله علیه و سلم پس منزلت و شرف این علم به خاطر این که وسیله واسطه‌ای هست که ما را به معبودمان متصل می کند وقتی که یکی از زن از بعضی پچه در صحبه میشنود میگه از که خدا لعنت روکنه اونهایی هایی که بدی احاب را میگن یهود اومدن بدی یه فرشتگان رو بگن جبیل تا اینکه که واسطه بین پیامبر و خدا را قد بکنن و اینها اومدن واسطه بین ما و بین رسول و خدا را قد بکنن واسطه را از دین ببرن پس علم حدیث فسیله هست که ما بتونیم به اقوال رسول ما برسیم پس علم مهم چون ما میتونیم بر دیانت در اون دین در عبادتمون در اخبول افعالمون مدرک داشت روزی فردا روزی قیامت اومد جلوه جلو به خدامن زنشن و خدام از رو چرا این کارو کردی پ ها تو برحانتون خب این برهان هم در دنیا هم در آخرت خداوند از اون برهاان میخواد مدرک میخواد ما چه مدرکی که برای بر خودمون او واقعا هم ایندین و پذیرفتیم این حیث را پذیرفتین بر خسب هوا و هوج یا بر حد اینکه پیانبر خدا چه این خب پس شرف این علم خیلی طرف بالایه. شرفش در مدرکشه در شه خب پس این یک جمبش. جمبه دیگر این که خود علم حدیثی که لما در اصطور برد میکنه که علمی که ما به حدیث سریف میرسونه قواعدش عدلش قسمتی از عدلی نقلی از قرآن مثلا گرفته شده. مثل فرموده ی الله جلع شعنو جا ادون فاتقون بنبعین فتح بین. خبری اول متبین بشین. چطور باید متبین بشین. الا یک قائلی کلی از قرآن الا بعد می آت می آت ش از این نحس به خب وقتی خداون میگه فاسق خب فاسق چه شخصی میتونه باشه میتونه شخص گناتار باشه میتونه شخص دروغگو باشه میتونه شخص مبتجع باشه چون مبتجع با بدعتش هم فاسق میشه خب پس با همه قیق بنده ها مشخص میشه باید اون کسی که ما حرف رو قبول باید بکنیم باید, باید هم عدالت داشته باشه که ضد فسده و هم با ضبط داشته باشه چون خود به خود کسی که ضبط نداره در گفته هاش اشتباه و دروغ میفته که با ضبط منجربه فس میشه پس این قاعده کلی الان ما در تعریف حدیث صحیح خواهیم داشت الان ما قبل از این ما بیان به تعریف حدیث صحیح بپردازیم در یک اشاره بود این که چطور علماء اومدن این قبعات و استخراج کردن از نصوص این فقط به عنوان یک اشاره بود مطلبی که مهمه طالب به علم باید بدونونه اینه که بدونه که این علم حدیث خونها براش پخته شده جهاد ها شده سفرها شده ارا ها برای حفظ سفری شده خداون اشقای را فرش مثل ما بپری که یک میلیون حدیث را حرش بکنه تو این که دین خودامن حد بشه یک مطلب مهمی هست که طالب علم باید بجونه و اونم این که این علم, علم حدیث حفزش لازمي حفز قرآنه حفز حديث لازمي حفز قرآنه چوتور و دمان ده قرآن ميقی وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نوضل إليه وانزلنا إليك الذكر ذكر نيكي قرآن لتبين فإنك تبين بيين بيين بي واضح بي ورا دار قرآن мегӯяд: "Вақимус-салат ва аз-зука". Ва қомати намоз чӣдӯр бешад ки табиин наше? Хуб, агар табиин наше ё табиин хат неше, ин Қуръон ба дарди мо мефорад. Мегӯяд: "Вақимус-салат, ман дилӣ чӣдӯр намоз бокунам?" Ҳаломун беҳтар аз яҳуд буд. Яҳуд, насро ва ҳамчини фарқаҳои мухталифи فرطهي که هوا هوا هوا سكرت. مشكله شون درجيه? عدم استنا. عدم مادرنك. مؤهما مضائب دارد من نميقر. ما ديني که براه اشخات خاصي هات بدارد من نميقر. معتدله وفلاوسفه فلو... د فلو... فلو... فلو... فلو... ديني شو فقط بخاص لخولهشنه. فقط دين دين در ادر ادر ادر ادر ادر ادر ادر ادر ادر ادر ادر ادر ادر ما دین شمولی رو میخوام دین کامل دینی که برای یک حامیه که میخواد سیادی بکنه یا میخواد کچه غیابون رو پاک بکنه دینی میخوام که به درد همه بخوره نه این که تخط خاص متفکرین باشه دین خدا با دین شامل باشه دین ما دین عشقات خاصی نیست که گم شدن یا پنهان شدن یا قرآن خاص به خودشونه نه قرآن نازل شده برای که تذبر بشه God to the people We need to be a hedaaya. This hedaaya is not a person who is in this situation. We need to be a hedaaya. We need to be a hedaaya. But I am going to be a hedaaya. And I need to be a hedaaya. قرآن را در کرد و فهمید نمیشه اوقات نماداته شیفتاد نمیشه بفهمیم که شروط زکات چیه زکات را با بکی فرداخت بکنیم حد زکات چیه نمیشه فهمید پس همونطور که قرآن حس شده باید سنتم حس بشه تا ما حس بشیم تا ما حذف بشه و می‌خوام حذف بشه خداوند اگر الگوها را در خدا گذاشته اگر ابراهیم گذاشته در گذاشته اگر این الگوها گذاشته به خاطر اینکه همون طور که اونها حذف شدن ما هم حذف بشیم همانطوری که خداوند قرآنی گه آیه متنیتنا بأمرنا لم وصبر و كن بأیاتنا یوفن I just am going to the world. I just am going to the world. Hedaaya. Wakti hedaaya kya be amr khuda washi. Wakti hedaaya kya tifk shariah khuda washi. Tifk aon chiz kya khudahani djust dhashda washi. Agani hedaaya kya tifk aon hedaaya kya tifk aon hedaaya kya tifk aon hedaaya kya tifk. برد عقول و افعالش رو بدوني، عقولی به توزیع حلا تبیین و تفهیم قران قران رو بس اهمیت اشکی برد بس علم حدیث ان مکمنی بس علم حدیث ان مو سلاح حدیثا بود خلف بشه چون اگر علم حدیث سر نشه سنت هم سر نمیاد لو خدا نکنه که روز بیات اله إذا كنت أشعرنا يا قيامات أم همينك ألمت أحيحة الميونة معذن بعد أشتري الشيء وننبض حفظ علماء إن الله لا ينتجر هذا العلم انتزاع إنما ينتجر بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما استخذ الناس رؤوسا جو خلا فأفتر بغير علمي فضل وأضل إن علم علمك مسمر علمك برام فائدة علمك برام أجر فائدة أجر вақти нафа дар ке, ки илм он сахих боша. аломия дар саҳат ҳам да ҳиқом дар баҳси ниятӯ, дар баҳси шарут амал қаида аст. ҳар амали қабр тавон мисслом бад дар баҳс мусарақадӣ. хуб пас лазмияти ҳифз ал-Қуръон ин аст, ки мо ҳифзи диққат ва инна лаҳул хафиздон از علم رجال و علم سلحخری علم ر جاتل ما آاشا اون رابییانمونتون بدونیم مدمون رو میدانیم ما مثل الان یههوی داریم نظر را داریم ما بهها طعنه میدانیم اونها نمیدونم اه... نقد وارد می کنیمیم اعتقاد میکنیم, میکنیم. میگییم که شما مدرک نداری تلمود داری فلان داری نوشته مشخص کی نوشته مدرک نداری که او را ره خودش مدرک توراد در سهی ملاحل تاریخی در هشت مرحله در مون آشوری ها فرانی ها در زمان حقامانشیان و غیر و غیر و غیر این تورادشون گم میشه تا اینکه میاد زمان تیتوس و پادشانهان رومانی در سال 65 میلادی و در سال 35 میلادی اون تخت ارشدیم، اون حیکل سلیمان آتش داد و میشه اون توراتشون، اون کلام خدا که خدا با دست خودش نگاشته بود و نوشته بود اون تورات از بین میره اون مقدسات یهود از بین میره خب بعد از اون گبراه میشن ما نگاه بکنیم عدیان قبلیه در منسوخ شدن اگر از بین رفتن به خاطر اینکه عدیان موقعی بودن، موقعی بودن عبدی نبودن قیامبرانشو خاتم نبیه نبوده به خاطر همین خداوند تعهد حضر را نگرسید دار خودش نصرانیت هم همچنین دین توقیتی بود ندین تعبیدی عفض دینه ما، دین ما تعبیدیه چون تعبیدی باید حضر بشه، باید رجال مجخص بشه دین تو باید تعبیدیت بمونه نصرانیت مثلا بود. بود برای انجیل خودشون، انجیل خدا که ازش یاد میکنن اسم از انجیل خدا نیست کتاب انجیلی ندارن که انجیل خدا یا انجیل عیسی باشه انجیل انجل یوحنایی انجیل متی انجیل یوحنا انجیل مرقس انجیل لوقا انجیل مرنابا انجیل اشخاصه اشخاصی که شنیدن حالا اون اشخاص معلوم نیست که حواریین یا حواری نیستن که دو سنه پیش اونم حواری می설 لوقا و مرقس حواری نیستن خب ما می‌بینیم در این چه سابقه تاریخی خودشان موندن داخلش که از که این کتاب نوشته شده؟ چطوره که تا سال دیوی تا انجیل بوده ست تا نسخه مختلف لیکن از این ست تا فقط چار تا نسخه مونده چرا در انجیل لوحنا عکس چار تا انجیل بقیه بحث اولویت مسیح درشه ما میبینیم دفیسه ها تحریفات روزی مروان بن الحكم نشسته بود در مدینه ی شقیه یهودی میات در ام ال دسودور پیدا میکنه سوال میکنه که می کنه می این شخص کیه اول اینور دارم میبینمش اینه بله این شخصی هست که من بوده بود یک از خدایان اموی اموی نه میدان عباسی حالا کل اینکه سوال میکنه میگه که یهودیه بعد در ساختش میتونه مسلمان بشه و شرخش بده این اسلام اهمیت اسلام بعد یک مسئله بهش مطرح میکنه خب چند تا مسئله بهش میگه و فیلان این شخص بعد از یک سال دوباره برگیه از ما یهودی بعد اومد گفت که من مسلمان شدم کچطور مسلمان شدی پارسوکی من رو باید گفتم مسلمان نشد نا چطور شد که مسلمان شد گفت که من توراز رو گرفتم انجیل رو گرفتم تحریف کردم فروغتم از من خریدن توراز همچینی انجیلم همچینی خریدن از من کسی نگاه نکرد که من چیز یاد کردم چی کم کردم میگه یه روز گرفتم قرآن دوستان از گرفتم نوشتم و دست خودم رفتم که بفروشم فوریزم بیدم به خاطر همین غیر ممکنه که یه قرآن درش اشتباه باشه و کسی نفهمه باور بکنی جاهای انسان تعجب میکنی یه شخص که در مسئله شهست مثلا من خودم دایین یه روز قرآن دستش 90 سالشه 5 سالشه اُمّت گفت کو کی قرآن کو از مدار خریدن نگاه کن این حرف اینجا در طور یکه اشتباهه بیار مادر قرآن هم اندازه نمیشه قرآن رو با قرآن دیگه مقایسه نکن نمیشه قرآن تحریف کرد علاوه غیر از تحریف سنت مهمش چون ما گفتیم اگر قرار باشه دین متفرد بشه لازمه این حفظ دین حفظ قرآن حفظ سنت باید سنت حفظ بشه باید اشخاصی بیام که قرآن رو تفسیر حفظ کنه تو اینکه برای امتا ناف نکنن البلو غیر از این که این بحث لوازم برای خودش توصیه‌ای داشته توصیه‌ای از خود خداوند و از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم از قبیل تشویق از خود قرآن ما مثلا می‌بینیم می که خدا میگه ولولم من کل طائفه ولولم من کل فرقه طائفه منهم يتفقهوا فی دین واس هر فرقه طائفه کی طائفه شاید یک شخص باشه یک شخص درست متفقه بشه دین رو یاد بگیره پس این خودش توصیح هست برای تحلیم بسید انسان یاد بگیره من و خود خودم معلوم نیستا که زنده باشم شیخ فرانی معلوم نیست که تا که زنده باشم پس اگر ما میخوام دین خدا حرست باشه باید از وقت خودمان بذاریم باید سختی این الف تحمل بکنیم اگر ما تحمل نکنیم که تحمل بکنیم که میدونی بکنه که من یا فلان تا فردا پس فردا هستیم بس ما باید از وقت خودمان بذاریم حمد خودمان بالا ببریم تا این که متفقه بشیم، تا این که این دین ما نابود نشه از بین نره شونکه از دین از بین رفت بی خود بخود، اقل و اقل و, و, و هم مردم که اون را بیشن، هم ما خودمان بس از لازمه این حضر دین تفقه دردید خب توصیات خود رسول الله را ببینیم صل الله عل رسول محمد صلی الله علیه و سلم در حاجت بدعا می بینید می فرماید بله مردم درست می از جانب میکنه در حق کسانی که سنت را می شنوند. مدارسه علم حدیث ها الله را میکنه. نضر الله براه наضر الله برا خدا دلوني мекунад. دلوني мекунад, тиниш, دلوني мекунад, тигиш. دلوني мекунад, ақлш, басиратш, чешмиш, ки мехоҳад ба он Қуръон хаст будани. суннатро хазр кунад. Худо дурониш кунад. наضر الله برا. о ки аван саъма ма қалат. الله برا, инсай ла ма қалат. ма қалаима робиш надод. аҷри бузургӣ. инсон فولهوشغن حالا خف الاشتغان حالا تبذلن فران دقانو ماهيها تلبع استخفار وقلن باسي بريعن طالب علمي كده وما دقلت في عام برشة العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينها في دينها ولا ديناره وإنما ورثوا العلم IS Unless somebody thinks millennial of everything else. It is very interesting. It is an learning approach. It is very interesting. glorious person they are sitting there To make it a exemption from the attributes of Rasulullah ﷺ detailed out of that Daniel and Mary was killing himself The Lord was saying thatfolins were not because of the Praise. فادونات ببصيره حسان قل هذه السبيل الى الله على بصيره انا ومن استعان لي العلم اصحاب انه بفضل استعان يكفوت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقولون هم يدونن مش مثل انهي كنميدونن باشر هناك اللي ميدونن بس نميدونن باشر خير ايش وقت شانهم عندنا بخدا والله انما يخشى الله من عباده العلماء ولاما انت بتدرس يا فضل علم شرف رحمت خیلی بالاست شرف شنیدن وحی خدا خیلی بالاست انه لا ینتقان هو لا شنیدن وحی خدا کلام الله خیلی شانس بالاست در ستونات که رتبه ملائکه رو بیده بلکه شانس از ملائکه بالاتر هم میبره خداवत چیزی که طبق قاعده انسان میتونه از با علمش و با بصیرتش با ادای افاضات و تکالیفش بالاتر بالاتر بره بخش عرفه این خیلی بلا بخاطر همینی که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم دعا میکنن و میفرماین ندار اللهم را سمیع مقالتی حسنا <تصفح> و علیکم و سلام خدا نیرانی بکنه کسی که مقاله من رو بشترد اول شنیده فبا آنها بعد درک بکنه به سهمه حدیث معابیه مشغوره لیلتقیه که بيات اشريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمى من يريد الله فيه خيرا من يريد الله فيه خيرا يفتخر فيه فوضع کسی که شنید و کسی که فهمید اجرس در اون فاداشو در مقابل اون شنیدنش و فهمیدنش بالاتر ببره با انداختن از نورت از نزیگیش و بسیرتش و گفتیم در خود احادیث به خود این کلمه بعد خود به طریقه دیگری خودا من اشاره کرده از جمعه فرمودهش من یورد الله بیه خیرن یفقه و فتیم حدیث معمیه گفتیم کسی که خدا خیررییت او را بخوام او را متفق درد میه بس خدا ان خیریت م را خسته که ما را انتخاب کرد به صحبت اخال رسصل الله اخبار مستفا ص الله عليهسم پس کسی که میخواد شریک روشه در این خیریت میخواد پس باید احسان حریف باشه در فهم سنن. حریف باشه در فهم تا این که از این خیلیت محروم باقی نمونه. هرچنکه ما گفتیم خدا خواستی آلما در این جلت سرکت بکنیم. پس اگر قرار شده خطبا تا تو اینجا توفیق بما داده. توفیق هدایت من داده و برشاد که در این جلت شرکت بکنیم. پس این توفیق را بر خودمون شامل کرد بکنیم. احتمال خاصی به این ه من یورد الله و بی خیرن یورد الله الله خیریت مدابده لازمه خیریت خداوند سعادت دنیا آخرت یفقه و فردین خداوند اون را توفیق میده که فقیه بشه در دین خود از را فکر نکنید فقر فقط تر زمین که حدیث را فقط بفهمی که این فقر مزایش سنبات میشه نه لا. لازمه فقر اینی که ما بر اون استنادمون مستند داشته باشیم بر اون هرکی که بهش استناد میکنیم سند داشته باشیم مدرک داشته باشیم وقتی که من بیام, بیام یک صفح می راستن تا جب کنم هدیف حدیثی و نمیدونم صحیح یا زیده خب چه بده ادم میخورم بده چیم بخواد والا ما یه اصول میگن که اگر بلسر ما علم رو این چیم در نظرگی درختی خودش علم میدهش، سمره هست، سمره اون علم، شکمی که از اون, از اون علم سنتاج میشه، درست علم، شکمش نیوهاش، من مشتهد، ربن سبو، دستا و دسیبهی که اون, اون علم را بهد میدارم، اون علم آلتی هست که چی اون شکر را سنتاج میکنه، و پس باید یک درختی باشه که من اکی مشتهد بوتونم با هم وستوالی که دارم علم مستلح حدیث علم اصول قیق بوتونم یک شخم رو از بکنم اینی که خودمم میگه که چیم از رسول قل الله قل ها دهی سبیلی ازعو الى الله على بسیر دعوت من به سوی خدا چون دین سوی خدا آمده وحیه سوی خدا از قرآن و سنت از صرف خدا پس دینی که از خدا آمده و به سوی خدا لازمش این کسی با بخیره باشه بینش باشه با فهر باشه درک باشه با مدرک داشته باشه گفتیم که ما میشیم میشه قلها تو برها نتمین کنتم سؤالت یعنی چه در دنیا شده را فرمه ما, با... ما خدا مند از این مدرک میخواد چه مدرکی داریم بس لازمه این شمقت مدرک فقه در علم اثناد فقه алло ни азбот ул арш самма боша фал ба далека тосабот ҳоло баз بیا ниқос бкун ва ҳукм асн фашруп аз из хулосаи ки мо мешитем зшк кунем дар муқаддимаи تاریخش آغاز شد از چه موقع خودوان حفظش کرد؟ چطور حفظ این سنت آغاز شد؟ حفظ این سنت آغاز شد حالما اختلاف دارند در جنبندی بین احادیتی که در سعیحین اومده احادیتی که من از سعیحین داریم ва غیر این هست قسمت آنها نهی از کتابت و قسمت آنها دستور به کتابت توصیه به کتابت اینکه نوشته های گفته های رسول الله تدوین بشه از جمله نهی هایی که شده فروردین رسول الله صلی الله من كتب عني غير القران فليمحوا من كتب عن غير القران يعني كاتيش از القران аз منвиште اونو махфуз ва پاک кунед хуб و یه شخصی میاد اعتراض میکنه میگه شما حالا سنت که میگید سنت پیانبر باید باشه تا این که قرآن فهمیده بشه چطوره که خودتون در صحیح مسلم داری که پیانبر صلی اللہ علیه و سلم تصور دادن که سنت پاک بشه چطور این حدیث را بفهمیم در زمین اون حادیثی که اومده به تبدیق دیل ولو آیت اکتو بلابیشا امره دیگه به بیشه ها بنویسی دستانه که رسول الله میده احکامی که مورد نیازه شد فهم این حدیث خوبه که الان کتابی که در این زمنه بشه شده مطالعه گو کتاب تقیید العل تعلیف امام خطیب دار دادیم تقیید العل خیلی کتاب مهم نید اختلافاتی که در این حدیث تو مجده چند بعدی به اختلافات اختلاف و... به اخت خلافات بینصفحبه هم او تجی هدت مزال این مزغل. این نو اختلافات هیچ در اون جن بند او میشه کرد این شه ك... این نه خاص کسانی بوده ت قرآممون نوشته تا کل خاطر ان کلام رس الله قا نشه مخلود نشه با سربودی الله تعالی شانہ فهم فهمي. در قرآن گفت که کی من كتبت عنی غیر القران فلیقطنی هم همراه با قرآن غیر قرآن نوشت اونو حذف میکنه همرو قرآن که به دین این فهم اولی این چه فهمه فهم دومی چی میذنه میشه تعمیر اینی که این در بد امر در اول اسلام که مردم ادوات نوشتن رو ندارن چنگها بوده و فلان بوده وستان البرس با بس وستان نوشتن کم بود روی سخون گافی داشتن روی تخته و یک اصافت شد دیت میتونی میخواد لازم داشتن تا اون کتونم اون قرآن رو درش خلیف بکنن اون عدوات او سخون گاف تنگ خیلی عدوات یادی میخواد چون کم بوده بس اونها تصور دادن که صورت دادن که غیر قرآن فرمان کسی ننیمیسه تا این که خودمان توفیق بده مسلمان ها پیشرفت بکنن و عدوات نوشتن را بهش پیدا بکنه سبومین جمعه این که میشه اینه که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم اگر نه کردن اشخاص خاصی را نه کردن تا این که حفظشون خراب نشه هدف این بود که رسول ما صلی الله علیه وسلم با این توضیحش اونها رو تشویق بکنه به حفظ نه می‌دیدین حفظ قرآن بنویسید ولی حدیث را لازم میید شده که شما خودتون در سینه‌تون حفظش بکنید نه این حفظتون رو تنبل نکنید عربا مشهور بودن به حفظ شعر و به حفظ حدیث عرب مشهور هم به حفظیم. در یک جده ست تا بیت یک نفر میخونه هست تا, تا ست بیت حفظ بیکنه. چرا خود عرب رو انتخاب کرد برای حفظ دین؟ برای حفظ بالاشون. برای اینکه رسوبات تقلیدات انحراباتی مثل اومدهای دیگر نداشتن. پیشرفت مثل پیشرفتای اومدهای دیگر که سبب بشه که حفظ و قدردست بودن نداشتن. خیلی ازمتهای انصابشون شرف ن حفظشون شرفه نمیده هم اطوالتشون شرفه خیلی از چیزها داشته که خداوند این امت را انتخاب کرده به خاطر همین چیزی که ابن تیمین با اوجه که خودش عربی نیست کرده ترجیحش بر اینه که امت عرب بهتر از امت های دیگه چون خداوند یکی چید استفا من کنانت بنی هاشم بنی هاشم کلاوست میگه بنی کنانه بنی هاشم انتخاب کرد منم از فنان بنی هاشم و و ان انتخابه. خدا من انتخاب کرده این امت هست. بعد از این امت عرب محمد علیه انتخاب کرده. پس این انتخاب شده هست. انتخابش گفتیم یکی از جمله جمعه مباحثی که حدف انتخاب بوده اینی که چی؟ بتونن حفظ بکنن. بتونن دستگینی خودشون نگهداری بکنن. که هیچ امتی معروف نبودن به حفظ مثل امت اسلام. ما میبینیم. یونانی ها مشغول هم به فلسفه خدا کجاست خدا اومد چطور رفت چطور اومد حادثه و محدوده و فلان همش فکر فکس فکر, فکر و از چند تا خواستی خواستی مختصر میشه اسلام اومد که این قاعده رو پردو کنه اومد این ام علم شامل سموم بشریتو کنه خب این میشه جنبندی کن غیر از اینکه ما می‌بینیم. داخل ترجمه بدی بین اینها ما می‌بینیم که رسول ما صلی الله علیه و سلم دستور میداد جای اكتبوا لا بش. و با دستورات از احکامی که مردان یادش. جای می‌بینید دستور میده بلو و علی. بلو لازمه تطبیق این که نوشته به چون که نمی‌دونن حفظ بکنه. خیر از اینکه از عمر بن عبد الله عن الحديث داري در سايي بوخاري كان عبد الله امر اعلم مني عبد الله بن عبد كان اعلم مني فإنه كان يكتب ولا أكتب فانه كان يكتب ولا تسمي يا استاد خب طلبال از اين حديث يك حكم ورثه مبديكنه و یک صک یک مصدریه بحث موصل احادیث یک فقمی که متعلق به سنت یکی از انواع سنت فقمه تخریری سنت یکی از انواع سنت که میش به استدلال به این طرف فهمید که سنت رسول الله عبد الله کرده امامی اگر رسول الله از سهلی نهی بکنن بعد خودشان انجام بدن و یا در زمان, در زمان خود رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کسی اون سهل انجام بده و شهر ساکت بشه دلمت این داره که چی؟ اون نهی بر تحریمش نسبت بر تراحه شد مثل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهی کردن از استقبال و استقبار کعبه و قبله در قضای خاجم بیتن عبدالله عبدالله عبدالله بیگه بولای فرنی رسول الله ربتم دیم که رسول الله پشت بکرد و داره قضایی حاجت کنان ما گفتن که چی؟ پس در بنیان کراخت داره چون رسول الله فعل حرام را انجام نویده پس این صحابی اگر کارش حرام بود عبدالله عبدالله عبد کارش حرام بود در نویشن سنت رسول الله جی بهشون میگفت که ننویسید عبدالرحمن النبوي چون می نویش در خطش کان یكتب استمر لازمی کان انو استمر می نویش تا بعد از حیات رسول الله کان یكتب ولا نه ما نبی نبشت چون ابو هریره قدس رسول الله صلی الله کرده بود سلم دعایی که رسول الله او رو در ابوی خودش میگه بعد بعد از اون به رسول الله دعا کرد دیگه فراموش نکرد دیگه باقیش مباقیش اختلاف بین صحابه و اختلاف بین تابعی در این مسئله بر بگرد کتاب تحصیب ایسا دیگه کتاب تحصیب این سالیف خطیب برای خود جمع دیگه تا اینجا کسی اشکال احمد تا اینجا که چیزی نبود؟ анус биҷуни расине ки баъде баган ки ният башна надорад, анус ният башна надорад. анус боҳаст. ин یک مسئله هست در علم وصول کسن اصول لغت در وقت لغت بخش میشون همچنین اصول فقر این میگن چون قرآن بر فهم اصحاب بوده بس لازمه نزول آن بر فهم اصحاب اینه که ما فهم اصحاب را بر آن نسوس بدونم چرا خدوان ارخاب را مشخص کرد؟ چرا اون جامعه رو مشخص کرد؟ حتما خدوان میخواد که بر حد اون چیزی که اونها ها میفهمند لغتشون کششش داره چی ما بفهمیم بخاطر همین آنها میگن که تا بعد از بعد از قرن اول دیگه که در لغت حجت نیست بگر امام شافی بعد جا میگن تا 150 هجری خمبری کشش حجت نیست در لغت مثلا در بحث عث ولای معاصر می‌بینین که در اعث النهارا معنای ترک می‌دهمن ریش بود ترک شده آیا این فهم در قالب قواعد لغت درسته فهم اصحاب درسته در قالب لغت درسته ما قالب فهم اصحاب در قوی فهم اصحاب عبدالله قرما و همش نبی قرده و زیر قاضیشو پایین قاضیشو میچینه است معنای ترف نفهمیدن خود عبد الله بن راوی حدیث در صحیح بخاری و خود تابعینی میگه و راوی تحت تفویضی في مينة. ترمنوها در بحثات جمع میبینه که قبول میکنه و خودش هم راوی حدیث اهل لغت فقط خلاف خود تمام صحابی ثم اخراف فهم لغت یعنی می لغت رو ببینید ابوی عبد فاطمه رسول الله امام مشهور در علم لغت کشافی میگه از من در لغت آگاه‌تر عالم تر در کلمه عصد میگه به معنی تکفیر و تکریب معنی زیادی عبدالله بن عمر با این چینی فهمی فهمیده اون جایی که مفهوم داشته ولی کدام دیگه از علمه لغت همون معنی تک جا نداره، جایگاه نداره پس ما باید بر حد فهم اونها بفهمید و علما اگر این چینین قاعده که قاعده مستدرده نیگه لازمه این فهم یعنی فهمیدن قرآن با فهم اونها این چیز بدهی هست چون خدا من نیومده که اعجمی را بیاره قرآن بفهمه این چخص فارسی زبان را بیاره قرآن بفهمه باید عربی باشه تا دو اون قرآن را بفهمه تا جایی که عرب لغتش کشش نداره مثلا استوا معنی استولا لغت عرب کشش نداره لغت عرب, عرب هیچ وقت نگفتن که استوا معنی استولا به خطر هم این مرده بر مرده نمیدی جایی گاه نداره استوا معن بر اساس فهم لغتی که حالا هم از طرف داشتن هم لغوی ها مهمه شرط در فهم و استنتاج احکام شرط در استنتاج استنتاج احکام فهم احاد و فهم لغت چون باید تبیین میشه دیگه به تعیین این لازمیه تبیین اینه که لغت عربی واضح باشه تا این که رسول خدا بتونه تبیین بکنه چون رسول ما خودش عربه و علما استناد میکنن در این مساله به فرموده خداوند جل قال قران الكريم ومن يشاغك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساكنه نصيرا ومن يشاغك كسي المشاقه تكون كسي كعزره رسول الله بدربه من بعد ما تبين له الهدى بعدين كحق به بره الا حديث بيت رسيد سنده فاهمي كده صح و يتبع غير سبيل المؤمن اتباعك غير سبيل المؤمنين پوش بده به مؤمنين چه مؤمنين مؤمنینی maksudاً مؤمنینی که اینجا با سیافه معرفت مودن معرفت آنکر المؤمنین حقیقی که شعر اونها رو مؤمن شناسته از حلقه‌را از حلقه‌سان دیگه هستند بخدا رحم کنی که رسول الله الناس قد من الذين ثم الذين يهلون بهترین اماده خاصه که در قلب موندن چون مؤمنین وَيَثَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْ كُفْتِينَ اتباع بكُن غَيْرَ سَبِيلِ مُؤْمِنَانِ كَأَلْحَابَ هَسْلَ نُوَلِّهِ مَتَوَلَّ وَنُسْلُهِ جَهَنَّمِ وَسَعَدْ مَتِيرًا عاقبات جهنم جهنم يوجدان ايراض اشکال اضافة ادانة بديم او بحث то ҳатт конфиденшӣ кафи бошад ин висайи мендис касн кард аз қоре масаҷо нагуфтанд ва худам ҳам яке аз онҳо ин вақт ба шобада аз қоре масаҷо